در جستجوی کوههای سرزمین پریان زمستان بر ایل فرود آمد و جنگل را در چنگال خود گرفت شاخههای های کوچک را منجمد کرد در دره رود را از حرکت باز ایستاند و در چراگاه های گاوهای نر علفها را به خشکی صفالینه ها کرد و نفس جانوران همانند دود یک خیمگاه بالا میرفت و اوریون همچنان به جنگل میرفت. گاه اوت او را با خود می‌برد و گاه تریل. هنگامی که با اوت می‌رفت، جنگل سرشار از افسون جانورانی بود که اوت شکار می‌کرد و گویی شکوه های عظیم های تاریک و دوردست را تسخیر می‌کرد. اما هرگاه با تریل می‌رفت، رازی جنگل را فرا می گرفت و کسی نمی‌توانست بگوید چه جانوری ظاهر خواهد شد و نیز چه چیزی در پشت هر تنه عظیم درخت پنهان شده است. حتی ترل هم نمیدانست چه جانورانی در جنگل هستند، جانوران بسیاری به دام هوشیاری او میافتادند، اما که می توانست بگوید تمامش همین است؟ و هنگامی که پسرک تا دیرگاه و تا هنگام فرو رسیدن غروبهای شاد در جنگل می ماند، همواره همراه با غروب خورشید درخشان و در سرمای تاریکی فرارسنده، صدای دور و ضعیف شیپورهای سرزمین پریان را از شرق دور همچون صدای شیپور بیدار در رؤیاها میشنید. صدای تمامی آن شیپورهای نوازنده از ماورای جنگلها ها از ماورای تپه ها، از آنسوی دورترین سایه آنها و اوریون آنها را شیپورهای نقرهی سرزمین پریان باز می شناخت. جز تواناییش در شنیدن صدای نواختن شیپورهای سرزمین پریان که آهنگشان تنها کمی باراتر از آستانی شنوای انسان نواخته میشد و این که آنها چه هستند از سایر انسان بود اما حتی با این دویجگی هم هنوز چیزی بیشتر از یک کودک انسان نبود و من نمیتوانم بفهمم که چگونه ممکن است شیپورهای سرزمین پریان در آن سوی مرز شفق نواخته شوند و حتی یک نفر در هایی که میشناسیم صدایشان را بشنود. اما تنیسون می گوید نواخته شدن آنها حتی در دشتهای ما با صدای ضعیفی شنیده می شود. و من این را باور می کنم چون هر آنچه که شاعران می گویند باور دارم چرا که اگر به الهام ها توجه کنیم اشتباه های ما به کمترین اندازه خواهد رسید بنابراین هرچند ممکن است دانش این گفته را رد یا تایید کند سخن تنیسون در اینجا من را راهنمایی خواهد کرد در آن روزها آلوریک اغلب با اندیشههایی دور از اینجا به روستای ارل می رفت و در کنار درهای بسیاری می و صحبت می‌کرد و نقشه می‌کشید و چشمهایش همواره بر نقطه‌ای و بر چیزی دوخته شده بود که گویی هیچ کس دیگری نمی ببیند به افقهای دور دست خیره شده بود و به آخرین افق که آن سوی آن سرزمین پریان قرار داشت و خانه به خانه گروه کوچکی از مردان گرد آورد رؤیای آلوریک این بود که مرز را در شمال بیابد که در دشت هایی که میشناسیم سفر کند و همواره افقای جدید را جستجو کند تا سرانجام به جایی برسد که سرزمین پریان از آنجا نرفته باشد. عزم کرده بود روزگارش را با این جستجو بگذراند. هنگامی که لیرازل در میان دشت هایی که میشناسیم با او بود همواره در این اندیشه بود که او را زمینی تر کند. اما اکنون که رفته بود اندیشه های ذهن خودش روز به روز بیشتر پریان میشد. کم کم مردم به سیمای خیال زده اش چپ چپ می نگریستند با رؤیای همیشگی سرزمین پریان و چیزهای وابسته به آن اسب و ساز و برگ فراهم کرد و برای گروه کوچکش چنان آذوقه عظیمی تهیه کرد که هر که میدید شگفت زده میشد. از مردان بسیاری خواست به آن گروه عجیب به پیوندند و تنها افراد اندکی پس از شنیدن اینکه میخواهد برای گذر از افقها برود حاضر میشدند با او بروند و نخستین کسی که یافت و حاضر شد به او به پیوندد پسرکی بود که با عشق تعمید داده شده بود و سپس چوپانی جوان آموخته با تنهایی سپس کسی که آواز شگفتانگیزی را به هنگام غروب شنیده بود این آواز اندیشه های او را در سرزمین های ناممکن سرگردان کرده بود و بنابراین از پیروی از تخیلاتش بسیار خوشنود بود در یک شب گرم تابستانی ماه بعد تمام شب بر روی پسرکی که بر روی علفها خوابیده بود درخشیده بود و پس از آن پسرک چیزهایی را حد زده یا دیده بود که می گفت ماه نشانش داده است این چیزها هرچه بودند، هیچ کس دیگری آنها را در ایرل ندیده بود. او هم بلافاصله فاصله به خواسته ی آلوریک پاسخ داد و وارد گروه شد. روزها گذشت تا آلوریک توانست این چهار نفر را بیابد و دیگر نتوانست کسی را پیدا کند مگر پسرکی کودن که او را معمور نگهداری از ها کرد چرا که او عصبها را خوب میفهمید و عصبها هم او را میفهمیدند. هرچند هیچ مرد یا زنی او را به حساب نمی آورد. مگر مادرش که هنگامی که آلبریک از او قول گرفت با آنها برود گریست و گفت پسرش برای او که پیر شده اصای دست است و می داند توفان کی خواهد آمد و گنجشک ها کی خواهند پرید و از دانه هایی که در باخچهش می کارد چه رنگ گلی خواهد روید و انکبوت بودها در کجا تارهایشان را می تنند؟ و افثانه های کهان حشرات را میداند گریست و گفت با رفتن او چیزهایی بیشتر از آنچه مردم ارل میپندارند از دست خواهد رفت، اما آلوری که او را با خود برد، بسیاری چونین می روند و یک روز صبح، شش اصب زین شده و آماده با توشه راه به همراه پنج مردی که بنابود تا پایان دنیا با او بروند در کنار دروازه قلعه ایرل ایستاده بودند. آلوریک زمان درازی با زیراندریل مشورت کرده بود اما او گفت که هیچ کدام از جادوهایش نیروی جادو کردن سرزمین پریان یا باطل کردن خواسته مردبار شاه پریان را ندارد. بنابراین آلوریک اوریون را به او سپرد و خوب می دانست که هرچند جادوی او ساده و زمینی است اما هیچ جادویی در دشت که میشناسیم و هیچ تلسم افسونی بر علیه پسرش نمیتواند با تلسم زیراندریل برابری کند و برای خودش هم به اقبالی اعتماد کرد که در پایان سفرهای فرسایشگر و دراز به انتظار می نشیند. زمان درازی با اوریون صحبت کرد نمیدانست سفرش تا هنگامی که دوباره سرزمین پریان را بیابد چه اندازه به درازا خواهد کشید و نیز بازگشتن از مرز شفق تا چه اندازه دشوار خواهد بود؟ از پسرش پرسید که از زندگی چه می خواهد؟ گفت که یه شکار چی باشم؟ پدرش گفت هنگامی که من آن سوی تپا هستم چه شکار خواهی کرد؟ اوریون گفت گوزد مثل اوت آلوریک او را به این ورزش تشویق کرد چون خودش هم آن را دوست داشت پسرک گفت و یه روز راه درازی رو بر فراز تپه ها خواهم پیمود تا موجودات عجیب غریبتری شکار کنم آلوریک پرسید چه موجوداتی؟ اما پسرک نمیدانست. پدرش گونه های مختلف جانوران را باز گفت اوریون گفت نه از اینا غریبتر حتی غریبتر از خیرس ها. پدرش پرسید پس چه؟ پسرک گفت موجودات جادویی. اما از پا در سرمای پایین قلعه بیتابی می کردند بنابراین زمانی برای سخن گفتن نمانده بود و آلوریک با جادوگر و پسرش ودا کرد و دور شد کمتر به آینده می چون چون مبهمتر از آن بود که بتوان به آن اندیشید آلوریک در کنار بارهای آزوقه بر پشت اسبش نشست و گروه شش نفره به پیش راندند. روستاییان در خیابان ایستاده بودند تا رفتن آنها را تماشا کنند، همه از جستجوی غریب آنها با خبر بودند و که همه به آلوریک درود فرستادند و با آخرین سوار نیز وداع کردند، هم همه ای برخواست. در میان این هم همه بیهود انگاری جستجوی آلوریک و افسوس و ریشخند نهفته بود و گاهی هم دردی سخن می گفت و گاهی تحقیر. اما در قلبهای همه رشک بود چون منطقشان سرگردانی تنهای آن ماجراجویی در سرزمین های غریب را تحقیر می کرد. اما ته دلشان می خواستن با آنها بروند و آلوریک با یاران ماجراجویش در پشت سر از روستای ارل به بیرون راند مردی ماه گرفته، مردی دیوانه، مردی آشق پیشه، پسرکی چوبان و یک شاعر و آلبریک واند چوپان جوان را فرمانده اردویش کرد چون او را عاقل‌ترین فرد در میان پیروانش می‌دانست اما پیش از آن که خیمه بزنند به هنگام پیش رفتن ستیزه هایی رخ داد و که ناخشنودی مردها را می‌شنید یا حس می‌کرد دریافت که در چنین جستجویی نه به که به دیوانترین فرد باید قدرت داد بنابراین نیو پسرک کودن را فرمانده اردویش خواند و نیو تا روزگار دوری به خوبی به او خدمت کرد و مرد ماه گرفته معاون نیو بود و همه از این گزینش راضی بودند و همه به جستجوی آلوری افتخار می کردند و در سرزمین های گوناگون مردان بسیاری کارهای آقلانه تر از این را با هماهنگی کمتری انجام می به هر زمینهای بالای دره رسیدند و در میان دشتها راندند و چندان پیش رفتند که به دورترین مرزهای انسانها و به خانههایی رسیدند که بر این سرحدات بنا کرده بودند به مرزهایی که حتی اندیشه‌های انسانها از آن فراتر نمی‌رفت آلوریک با همراهان غریبش بر لبه دشتها در راستای این ردیف خانه‌ها پیش می‌رفتند در هر مایل بیشتر از چهار یا پنج خانه دیده نمیشد. کلبه چرم چرمساز در دور دست های جنوب بود. اکنون به سوی شمال پشت به آن کلبه به میان دشت هایی میراند که زمانی مرز شفق در آنجا بود و میخواست مکانی را بیابد که سرزمین پریان از آنجا نرفته باشد. این موضوع را برای مردانش توضیح داد و رهبران گروه، نیو، و زنده ماه گرفته دردم او را تحسین کردند و تیل جوانی که رؤیاهای ترانه ها را میدید نیز این نقشه را خردمندانه دانست و واند از شور سرشار این ستن اختیار از کف داده بود و همه اینها برای رانو که عاشق پیشه یکسان بود و هنوز چندان پشت به خانه ها نرفته بودند که خورشید سرخ به افق رسید و با شتاب تصمیم گرفتند در بازمانده نور آن آفتاب زمستانی خیمهشان را برپا کنند. و نیو گفت که باید کاخی همانند کاخ شاهان بسازند. و این نظر زند را چنان به جنب و جوش انداخت که همچون سه مرد کار کرد و تیل با اشتیاق کمک کرد و تیرک را برپا کردند و چادر را بر روی آن کشیدند و از بوته ها دیباری برایش ساختند. چون درست در کنار پرچین ها بودند و واند با ترکه خشک به آنها کمک کرد و رانوک با فرسودگی کار کرد هنگامی که کار تمام شد نیو گفت که این یک کاخ است بالوریک به داخل آن رفت و استراحت کرد و دیگران هم آتشی در خارج از چادر روشن کردند واند برای همه غذا پخت چون هر روز در تنهایی تپه های این کار را برای خودش می کرد و هیچ کس نمی توانست بهتر از نیو به اسب ها برسد و هنگامی که نور کم غروب از میان رفت زمستان سرد گسترد و پس از درخشیدن نخستین ستاره در تمام شب چیزی جز سرمایه تلخ وجود نداشت اما مردان آلوریک در میان چرم ها و پوستین هاشان در کنار آتش خوابیدند. همه به جز رانو که آشق پیشه. این به آلوری که در پناهگاهش بر روی پوستهای خز دراز کشیده بود و اخگرهای سرخی را تماشا می کرد که در میان هیکل های تیره مردانش میدرخشید نوید خوشی میداد. تا دور دست شمال می رفت و همه افقها را برای یافتن کوچکترین نشانی از سرزمین پریان می گشت بر لب مرز دشت هایی که می می رفت و همواره نزدیک آزوغه می ماند. و اگر هیچ اثری از کوه آبی روشن نمی آن اندازه پیش می رفت تا دشتی را بیابد که شاید سرزمین پریان از آن نرفته باشد و به میان آن می رفت. و نیف و زند و تیل در آن غروب سوگند خورده بودند که پیش از گذر روزهای بسیار به یقین سرزمین پریان را خواهند یافت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 رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در سرزمین های زیر دریا, در سرزمین. دریا. همه اینها و بیش از اینها ها در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان های صوتی.